شاهدان نیست که موی و میانی دارد بنده طلعت آن باش که آنی دارد شیوه هور و پری گرچه لطیف است ولی خوبیان آن است لطافت که فلانی دارد چشمه چشم مرا ای گل خندان دریا که به امید تو خوش آب روانی دارد گوی خوبی که برد از تو که خرشید آنجا نسواریست که در دست انانی دارد دل نشان شد سخنم تا تو قبولش کردی آری, آری سخن عش نشانی دارد خم عبروی تو در صنعت تیراندازی برده از دست هران کس که کمانی دارد اما ابروی تو در صنعت تیراندازی برده از دست هران کس که کمانی دارد در ره عشق نشد کسب به یقین محرم راز هر کسی بر حسب فکر گمانی دارد با خرابات نشینان کرامات ملا هر سخن وقتی و هر نفت مکانی دارد مرغ زیرک نزند در چمنش پرده سرای هر بحاری که به دنبال خزانی دارد مدعی گول و و نفته به حافظ مفروش کلکمانی زبانی و بیانی دارد